فرهنگ ایران میگوید که ما نیاز به چشم خرشیدگونه داریم نه به کتاب مقدس هفتخان رستم هفتخان آزمایش است که در پایان انسانها چشم خرشیدگونه پیدا میکنند. مسئله کتاب مقدسی وجود ندارد که اصل همه نورهاست فرهنگ ایران چرا که گفتیم اصل جهان را ارکه میداند ارکه هسته و مغز خداپری در هر جانی و در هر انسانی بود این بود که بهمن یا هومن ارکه یعنی مینوی ارکه خوانده میشد در فرهنگ ایران بهمن اصل حکومتگری و حقانیت به حکومت بود، بعدا راجع به داستانی صحبت خواهیم کرد که در شاهنامه آمده است و, و هیچ ربطی به تاریخ ندارد، بلکه مسئله حقانیت حکومت حق ها هست و این داستان برای ما باقی مونده است که خیلی اهمیت دارد. روایتی، که سپس الهیات زردشتی از بهمن کردهاند تصویر اصلی بهمن در فرهنگ ایران نیست بلکه این تصویر را با روایت خودشان مسخ و مخشوش ساختهاند بهمن در الهیات زردشتی که ما در متون ابسایی یا پهلوی میخوانیم به کلی با بهمن در فرهنگ ایران فرق دارد ما از همین مانده هایی که در افواه و در کتاب های و لغت و در شاهنامه و جاهای دیگر پراکنده باقیمانده است می توانیم این تصویر بهمن را بازسازی کنیم این البته این کار زحمت دارد ولی از ویژگی ها و سفات و خصوصیات این بهمن چرا به که, که در برش مردیم از اینها مشخص میشود که بهمن در اصل چی بوده است و بعدش در روایت زردشتی چه خطوطیت از بهمن باقی مانده است. در فرهنگ از اصیل ایران بهمن اهمیت داشته است. اهورامزدا تابش بهمن بوده است. غرم سیمور نخستین پیدایش بهمن بودان. ولی یک نکته گوجا به جا گاه بهگاه یک جفه اشتباهی می شود و این رد باقی می ماند. از که در بنده باقی مانده است که بهمن مینووی مینووس این هر چندند یک شطره یک اشت... اشاره به آن شده است ولی این خیلی امیت دارد یعنی چی یعنی تخم درمون تخم است، یعنی اصل تخمست و این، اندیشه اینه که جهان از تخم پیدا می شود انسان از تخم پیدا می شود اینها همه نشان میدهد که بهمن محض یا بزرگترین ایده و اندیشه ایران بوده است تخم درون تو یعنی اصل خودتایی البته به طور مثال جنین یا کودک در پهنای زهدان مادر در تاریکی است اصل تخ یعنی تخم در درون تخم در تاریکی از این رو بود که بهمن میان ناپیدای هر جانی و هر انسانی بود. از بهمن بود که ماه پیدایش میاد. ماه در جهان بینی ایرانی اصل آفریننده جهان بود این را این اندیشه ای را که آنها درباره ماه داشتند و از این افکار افکاری را که استنتاج میکردن اون افکار مهم است نه اینکه که از رحاض ستاره شناسی آیا ماه اینجور هست یا نیست ولی اون نتایجی که از این تصویری که از ماه داشتن میگرفتن این فوق العاده تاثیر، فراوان و هزارهی است و تفکر ایرانی را معایگل کرد. اون وقت از این بود که ماه در جهان بینی ایرانی اصل آفریننده بود حلال ماه زهدان آسمان بود بهرام ماه پر بود که بیان اصل نرینگی دنیا بود و این است که از ماه بود که خورشید می میشد هر روز تازه خورشید از ماه زایده می میشد یعنی چی یعنی روشنی ماه از زاییده از از حلال ماه بود این خیلی اهمیت داشت ماه در جهان ایرانی این معنا را داشت ما امروزه در مفاهیم انتظاعی می آنها در صورت می اندشیدم. صورت اندیش بودند نه که صورت رو یک ت... به نام یک تشمیحات شاعرانه به کار ببرن بلکه در صورت ها می این در یاد یادگرفتن اینی که چگونه در صورت ها اندیشدی شده این خیلی اهمیت دارد ما برای فهم ایران باستان ایران پیچ از دردوش نیاز به این یادگرفتن صورت اندیشی داریم این صورت ها پر از اندیشه است ماه ماه را چی می, می انگاشتن ماه مجموعه و خرمن همه تخم‌ها بود و چون در فرهنگ ایران تخم اصل روشنی است طبعا برای آنها ماه اصل روشنایی بود هنوز در آثار در ادبیات ایران به خوبی مشاهده دید که ماه را همیشه روشن یا تابان خطاب می کنن. چون این حالا چرا؟ برا خود که در فرهنگ ایران که درویت و پیدای شابه روشن می شود این پیدای شابتن برابر بود با روشن شدن برابر بود با بینایی پیدا کردن به اون چیز این بود که روشنی باید از درون یک چیز باشد روشنی باید از خود انسان باشد انسان وقتی پرورده شد وقتی بالیده شد پدیدار می شود. اون وقت روشن می شود. این بود که روشنی از خارج نمیاد این ایده فوق العاده مهم است که عملا این, این معنای آزادی امروز را دارد راستی هم همین معنا را دارد به این معنا که گوهر انسان باید پرورش فیدا بکنند این عوض پرورش انسان این روشنیس و این روشنی اون چیزی است که راستی گفته می شود و امروزه معنای آزادی این نیست که این معنای منفی آزادی است که کسی با قدرت ها که تاریک می با قدرت ها که انسان را ترکوبی می کنند به جنگت این مفهوم منفی محروم مصبت آزادی است مفهوم مثبت آزادی این است که کسی امکاناتی داشته باشد انسان امکاناتی داشته باشند که خودشان بشکوفند این اوج محبون آزادی است. حالا چون در پرهنگ ایران گفتیم این تخم اصل پیدایش و روشنی بود انسان هم وقتی که میشه کوفید و میبالید روشن میشد چشم هم همینجور و انسان از کسی یا حقیقتی از خارج روشن نمیشد این اندیشه فوق العاده مهم است و مرکزی است در فرهنگ ایران این بود که ما چشم, چشم در آسمان بود هم روشن میکرد هم میگید این دو ایده خیلی مهم است هم روشن میکنند هم چیزها رو روشن میکنند هم میبیند و این دو ایده در داشتی یک بینش صحیح، یک بینش حریق اینا که انسان خودش روشن بکنه و خودش اون را ببینه. این دوتا وقتی که ایرانی چشم میگوید این دوتا با هم، همراه و با هم یکی هستن. و این ایده ای است که ما نباید هیچ فراموش کنیم. این بود که روشن کردن و دیدن با هم بودن. در تاریکی چیزها را روشن کردن و دیدن آرمان بینش ایرانی بود این چه معنای داشت؟ این معنای بسیار جربی داشت بین و این به این بینش در تاریکی می بوده. یعنی انسان در تاریکی های تجربیات خود در تاریکی های واقعی ها می و به بینش می رسن. این ایده همون ایده است که به آزمایش و جستجو کشید جستجو و آزمایش همیشه بینش در است کسی کورمالی میکند که حقیقت را پیدا کند و این در فرهنگ ایران اساس بینش بودند واژه منیدن اصلا این معنا را دارد تجوهیدن در تاریکی این بود که مرغان در مرغانی که یا جانورانی که در تاریکی میتوانستن ببینن اینها ایدئال بینش میدن مثلا جغل مرغ بهمن که آتنی ها این را مرغ شهر یعنی علامت حکمت و علامت آتن قرار دادن این جغل چون که در شب میتواند ببیند یا اینی که خفا شب بزرگترین نماد بینش در شب بود اینها اهمیت دارد که اینها چه ویژگی هایی را در جانورها می دیدن. این بود که به خفهاش مرغ ایسا گفته می شد در ایران یعنی،, یعنی روح القدس را مر شب پره می دانستن. چون که بینش اصیل داشت بینش در تاریخی داشت حالا از این بینش در تاریکی یعنی از ماه بود که بینش در روشنایی یعنی خورشید می ساید انسان نیاز به هر تا داشت بینش در تاریکی باید به بینش در روشنایی برسد این ایده به کلی با اندیشه افلاطون که در قار می بیند از زمین تا آسمان تفاوت دارد این دیالکتی که روشنی و تاریکی این فوق العاده در فرهنگ ایران مهم و فلسفه بینش ایرانی رو به کلی متمایز از فلسفه افلاطون و باره بینش میکنه بینش اصلی بینش اصیل بینشی که برترین ارزش داشت بینش در تاریکی یعنی بینش از راه آزمونگایی و در نتیجه این این اصلا این است که خدا در ایران دانا به همه چیز نیست جامعه همه علوم نیست بلکه خدا در ایران اصر جس این فوق العاده مهم است این است که رام که همون یا افلید باشد در رامیش میگوید نام من جوینده است نام من جوینده است یعنی گوهر من و ما که چشم آسمان شمرده می این همانی با خرد داشت خرد چشم شد؟ خرد می بیند این یعنی خرد در تاریکی در آزمایش و در جستجو ببینش بینش این مفهوم خرد بود خرد فوق را ببینید اینجا مفهوم کاملا جدایش از تاریکی به به روشنهای می رسد خرد اندیشه را می زاید. این خیلی فرق دارد که ما اندیشه بسازیم پس خرد اندیشیدن از راه جستجو کردن و آزمودن بود و چنین بینشی بود که برترین بینش ارزشمندترین بینش خوانده می شد. یه که وقتی گفته می شود با جمشید با خرد کاربند مدنیات را با خرد کاربند بهش را می شود با خرد کاربند حکومت می شود کرد با خرد سامانده حکومت می کرد یعنی اساس حکومت بر پایه خرد آزماینده خرد تجربی قرار دارد و این ماه بود که از بهمن پیدایش بود. پس بهمن که اصل چنین است و بنیاد حکومت و حقانیت به حکومت شمرده می شود حکومت و جهان آئی را بر بنیاد بینش از راه جستجو و آزمایش قرار میده. و این ببینید این اساس فرهنگ ایران است نه بر حکومت رو بر پای یک شریعت یک کتاب یک ایدئولوژی یک قرار نمی‌دهم بلکه بر پای بینش از راه جستجو و آزمایش انسان ها قرار میده. نام دیگر بهمن که خرد به که مینوی خرد بود از جمله نامهایش اکومن هم بود این اکومن را ارایات زردشتی دیب کرده است چرا؟ اکو هکو به معنای اگر است و به معنای به حرف تعجب است اکومن اکومن و مینوی پرسش چرا و شگف بود یعنی چی؟ یعنی بهمن یعنی بهمن خردش بر بنیاد چرا کو کجا چگونه بر پایه‌ی شت قرار دارد بهمن اصل حکومت خردی که حکومت بر آن می میشود و در میان هر انسانی هم اصل چونو چرا اصل شت اصل بینش بر پای تعجب است یعنی همه مردم باید در شگفتی، در شک و در چرا به بینش حکومتی به ساماندهی اجتماع برسند ببینید این مردم در شیش هزار سال پیش به چه بونمایخ های اندیشه رسیدند و ما امروزه این اندیشه ها را توانیم گسترش بدهیم ولی این بونمایخ ها این بونمایخ ها را ما نباید در فرهنگ خودمون فراموش بکنیم فرهنگ ایران چنین است. فراموش نباید کرد که واژه پرسش در فرهنگ ایران چه معناهایی دارد ما معمولا وقتی پرسش را میکنیم همیشه خیال میکنیم ترجمه سؤال است نه پرسش در فرهنگ ایران معناه خاصی دارد یکی معناه پرسی یعنی جستجو کردن. معنای دیگر این از که نگران زندگی دیگران بودن ما به پرسه یک مریض می رویم. ما به پرسه یک نفر که پدرش مادرش مرده است می رویم. یعنی نگران حال او هستیم ببینید این ها معادرین واجه ها معانی اصلی باقی مونده هست پرسه پرسیدن یعنی نگران چیزی بودن نگران زندگی بودن خدا نگران زندگی سیمر نگران زندگی اینیست که میپرسد می میکنند که راه رفع نگرانی رفع این آزار نگرانی بیان آزارده آزارد شدن است پس بنابراین پرسش کردن باید سوال برای یاد گرفتن یک علم از دیگری یا تفتیش دیگری نیست مثل آقای تورات که وقتی خدا وقتی یهوه از آدم میپرسد پرسد, پرسد تو آره تفتیشیست تفتیش میکنه تو چرا این کار کردی تو چرا خودت را پنهان کرده ای بلکه اون که میپرسد خود میجوید و میجوید تا نگران جان دیگران باشد این است که با آجیه دیالوگ در فرهنگ ایران که هم پرسید یعنی با هم جستجوی حقایقی ایران کردن که برای پرورش زندگی برای پرورش جان همه لازم است ببینید چه معناه وسیعی فرهنگ ایران برای دیالوگ همپرسی دارد این واژه را ما سدهاست فراموش کردیم ولی الهیات دربشتی نمیتوانست این برایند بهمن را یعنی اکومن اصل پرسش و شگفت و چرا؟ این رو بپذیرد چرا؟ چون برای موبدان احورامزده احو احو اصل روشنی بود. جایگاه احورامزده روشنی بود. رو احورامزده در آغاز در روشنی قرار دارد. و اصل روشنی بودن به معنای آن است که او همه چیز را میگاند. اینه که خدا نور و سماوات و است الله نور السماوات یعنی الله همه چیز رو میداند و از همه چیز آگاه است پس در دانشی که از اهورامزدا میآید چنین دانشی چنین علمی کسی حق نداره چون موچرا چرا کنه لم و به من بگوید. این بود که مو به دان از نام دیگر اهومن که اکومن باشد دیو ساختن کمال دیو ساختن یکی از دیوان همون دیوی که در شاهنامه نامش اکوان است این اکو اکومن و اکوان یک چیز هستند و هر دوتا زشت ساخته شده صورت بهمنان. اون بخشی از بهمن رو که دیگر الهیات درداشتی نمی پجروه این از که ما بایستی یک دفعه درباره دیو از این تحریف و مستادی که بلاخره شاهنامه نگه داشته است با سراغ همین بهمن رو بگیریم و این تحولات فکری رو از یک دوره به یک دوره ببینیم پیدا کنیم چرا سؤال کردن پرسیدن چون چرا کردن شک کردن دیو شده است احریمانی شده است این یعنی یعنی جستجو از سیاست از اجتماع از دین رانده شده است فرسش و شک و شگفت کردن دیو پلید شده است این دیو در متون پهلبی دیو آشوبگر میشود که نظام را به هم میزنند و از بزرگترین دیوان و دشمنان احورامزدان میگردند چرا؟ چون برترین علم از این به روشنی علم از همه چیز آقاه شده است پیشدانی شده است و این را در اناحیات زهر داشتی به این گونه بینش در جست جور را بینش پس دانشی می پس دانشی و احریمنی می خوانم من پس دانست یعنی پس از چیزها پس از تجربیات می ببینید به کجا سوال و پرسش در سیاست و در دین به کجا میکشن و در اسلام انسان حق سوال استفامی دارد فقط حق دارد سوال که بفهمه خودش منشه ج... من شناخت نیست که سوال سوال استفامی نباشد من از کسی دیگر یاد نمیگیرم من باید دینش از خودم میاد بگیرم همین اندیشه همین اندیشه اهورامالتا به محمد بسیده است و قرآن اصلا با این اندیشه آغاز می شود اینا میگن قرآن علمی است علمی روش است علمی مجموعه حفظ کردن قوانین نیست علمی روش تحقیق و جست چیزی که علمی هست یعنی تابع روش جست و جست اینست که قرآن با این کتاب چرا می سوره حاضر کتاب لاره و فیه خدا نل در این کتاب نه تنها جای هیچونه شک نیست هیچ کسی حق ندارد در اون شک بکنه و فقط ترسندگان را پرهیزکاران را هدایت میکنند راه در فرهنگ ایران کسی که از, از خدا بترسد اون خدا در شعیه خدا مرجع ترسیدن نیست خدا, خدا دوست انسان است خدا محبوب انسان است خدا در درون انسان است این, این برترین یقین انسان است این همونی که اصل جوینده است یعنی رام رامی که یکی از بزرگترین خدایان ایران است و این در بن هر انسانی هست رام که اصل جست و این در اصلا چیز این در روان انسان هست. روان انسان اصلا اوربان روان انسان این همانی با رام دارد که وقتی میگوید که این و این خدای عشق است یعنی خدای یقین است و در همین رامیش میشه که میگواد من هرچه را جویم به آن میرسم یعنی یقین دارم از رسیدن حالا در اینی که در این کتاب پیشگونه شک نیست یعنی این کتاب محتوای آموزه ایست است که جای خرد زنده و آدماهنده یعنی بهمن را میگیدم در پرهنگ ایران بحث کتاب راهنما و خادی نیست اساساً این اون چیزی را که امروزه به عنوان اوستا مشهور است که اساساً خود کلمه اوستا به معنای زهدان جنین در زهدان است یعنی مسئله آبستنی است دانش چیزی است که از انسان لایده بشود این کتاب را کسی نمیخواند که علم یاد بگیرد این کتاب اصل آبستن شدن خود است به دانش یعنی انسان خودش حقیقت را میزاید این از که اینها رو سرود میگفتن سرود فرق دارد با آموزه و انسان ها میخواندن آواد میخواندن این برای جشن گرفتن بود این از که مسئله در پرهنگ ایران داشتن کتاب مقدس کتاب راهنما کتاب هادی نبود بلکه مسئله داشتن چشم خورشید دونه بود که رستم در حفظ خان می میرود تا به این چشم خورشیدگونه برسد همین مسئله در بهرام بهرامیهاش دیده میشود که بهرام به چنین بینشی میرسد فقط با یک تصویر دیگری که این را بحث خواهیم کرد هر کسی باید خودش دارای چشم خورشیدگونه بشود از نوری که هستی خودش به اشیا و رویدادها میتابد خودش ببیند و خودش بیندیشد این است که رستم به هفتخان میرود و در خانه هفتم است که توتیای را پیدا میکند مایه ای را پیدا میکنند که اگر در چشم افراد بریزند در حتی در چشم شاه و تمام صفویان میریزد چرا؟ برات خاطر اینکه چشم همه خورشید گونه این آزمایش ها در تاریکی هفت هفت مرحله تاریک این آرمانشود در تاریکی افغان نتیجه رسیدن به چنین چشمی هیچ کتابی که محتوای کل روشنایی است و او اون کتاب اون ارم روشنی به چیزها می در فرهنگ ایران مطرح نیست اصلا انسان ایران چنین آرمانی نداشت بلکه مسئله ایرانی زایش خرد در اثر انگیخ جستدان از تجربیات در جستجو بوده است روشنایی در یک جا نیست روشنایی در چشم های افراد در اثر جستجو و آزمایش داییده می شود این فرق کلی میان هاذم کتاب لارای بفیه خدون المتقی با چشم خورشیدگونه رستم دارد در فرهنگ ایران به معرفت چیستا میگفتن معرفت چیستا چیست چه هست این چیستا یعنی معما معرفت مصاوی با معما مصاوی با چیستا در پهلوی به خرج وروم میگویم ورومند یعنی شکدار یعنی جای شک یعنی چی خرد شکل رای رای به معنای چراست رای یعنی چرا همین واژه هم به معنای خرد است و هم به معنای رای زدن یعنی سگارش و مشورت هم پرسی هم پرسی با هم این رای زدن است یعنی با هم چرا گفتن و با هم جستجو کردم ارکه هم بایستی مرکب از همین ماجه باشد ار همون را معنای ا, ا, ا, ا ار همون معنای رای را دارد که یعنی کو و کجا و این است که باید به معنای چرا و کجا و کو باشد اکوان هم به معنای همون اکوست که معنای کجا و خوب چرا دارد؟ چنین خردی چنین خردی بهمن اصل دنیا است چنین خ... این خرد است این مینوی خرده یعنی اصل دنیا اکوان است اکومن است بهمن موسایست با اکوان موسایست با اکومن چنین خردی هم بونه جهان هم بن انسان هم بونه حکومت هم بونه دین است چون خود واژه ارکه که همون ارقه همون کلمه ارخه هست یعنی معنای آغاز دارد اون جهان با او آغاز میشه از این رو با به آغاز بهار کرت ها ارخوان سور میگوین. به گل ارقوان چرا ارقوان میگویم؟ چون از نخستین گلهای های و اگر در گیر واژه اکوان در گلو نامه ها ببینید می بینید اکوان به،, به ارغوان هم گفته می شود و همین رد که ما می توانیم ببینیم که ارخوان ارخه اسمک بهمن است. این ببینید همه جا را زدن ولی ردپا پا باقی مانده است چون که به ارغوان گفته می شود و این عرقوان ارخه این همین اسم بهمن است پس عرقوان خود بهمن بوده است حالا پس بهمن خرد سامانده اجتماع خرد حکومت ساز اصل دین گوهرش شک و چرا و پرسش و کو و کجا و چگونه است روشنی خوب در اینجا دقت میکنیم خو روشنی در آغاز قرار ندارد چون شک و چون و چرا نشانه ایناست روشنی نیست روشنی در آغاز ندارد بلکه جستجو و پرسش در آغاز قرار دارد نخستین چیز جستجو پرسش است معرفت و دانش روند پیدایش روشنی از تاریکی است معرفت و دانش اصل آبستنی و زائدن است. زان و رستن تاج بخشن. این چه معنا دارد؟ یعنی ارزشهایی هستند هستن که حاکمیت بر پایه اون ارزش ها حقانیت پیدا دامن تاج نشان دادن حقانیت به حکومت یک سرمونی یک آین تشریفاتی نیست. بلکه این بیان این است که این این سیمر بیان زار رستم سیمرقی هستن سیمور ارزش هایی را بیان میکن که بر اون حکومت بنا می یافتن مایه و توتیایی که چشم های همه را قرشید بونه می سازد، چشم شاه را کرشید بونه می سازن. سپاهیان رو قرشیدگونه می سازد. در هفتخان آزمایش جستجو اصل حکومت کشید یعنی نه کتاب نه آموزه نه شریعت بلکه همه باید چشم خورشیدگونه داشته باشن که از جستجو از ما بایده شده است کتاب مقدس بر بنیاد این اندیشه پیدا شده است که نور و روشنی ثابتی هست که همیشه در کمال میمونه اگر رنگ را... معنای ندارد کتاب مقدس چه جور میشه های کتاب مقدس شود. و این نور روشنی که همیشه در کمال خودش باقی میمونه جای جای احورمات همون الله نور و سما و یعنی نور کامل است این روشنی تغییر نمی چون در این صورت کامل نیست یعنی علم است که همیشه کامل است این بود که نماد نور در این ادیان یعنی این علم کامل خورشیدی بود که در میان آسمان ثابت می ماند این است که میگفتن در در قیامت و وسط آسمان ثابت می ماند همین ایده پیش از اسلام در اراحیات در زردوشتی کتاب حاوی دانش است. یعنی خورشیدیست که در بیان آسمان همیشه ماند. و انسانها با اون نور است که باید به چیزها بتابند و با اون نور ببینم یعنی عقل تابه که تفاوت میان خرد و عقل هست عقل اسلامی با خرد از جمله همین طبا بود در فرهنگ ایران چشم خورشو، خورشیدگونه معنای خاصی داره یکی اون چشم نخستین پیدایش جان یا زندگی بود این تراغوش و پیدایش از زندگی بود چیزی بود که نبود که از آسمان انداخته شده باشد بلکه از جان از زندگی پدیدار شده بود رویده شده بود جان در گزیده های زادست بخش سیوم پاره بیستوسیوم میبینیم که جان نخست با تو در ذهدان میرود و از این تو نخست چشمان نگاشته شود و نقش میگردد اونگاه این خیلی اهمیت دارد. آنگاه در مغز سر حواس دیگر از شنوایی و بویایی و چشایی و بساوایی پیدایش میابن یعنی چی؟ یعنی چش نخستین حسیست حس ولی نخستین حس ولی همراه و پیبسته با سایه را حواست نخست هست ولی برابر با دیگران است. از این گدشت چشم برای ما چیز دیگری است که برای آنها ببین این تفاوت ها را باید کامران تشخیص دهیم اونها وقتی چشم میگفتن محناشون مختوب از چشم که بود نگاه برای ما کمترین آلودگی یا آمیختگی با آنچه میبیند برای همه خاطر بعدن الهیات زردشتی میگوید که انسان پس از مرگ پیش خدا پیش احورامز به دیدار احورامز رو میرسند یعنی میبیند ولی از دور یعنی با خدا آمیخته نمیشند پاره است این دیدار جای واجه همپرسی جای واجه آمیختگی را میدهند در اسلام هم همینجور این است که اگر به همون با خود واجه چشم بنگریم چش یعنی چشم؟ یعنی چشمیدن چشم میچشد نگاه کردن مزیدن است مکیدن هست. آمیختن است این واژ چش خود واژه چش بهترین گواه بر این که چشم میچشد آمیخته میشود یک چیز رو خدا انسان خدا را میخواد با چش ببیند وقتی مولوی میگه انسان خدا را میخواد با چش ببیند با این یعنی میخواد بچشد میخواد بمدن خدا چیز مدیدنی مزیدنی است این فرق دارد با اینی که خدا خب در آسمان هست این اون الله را کسی نمیتواند به چشد نمیتواند به مدد اینجا دنیای عشق است خدا و انسان در رابطی عشقی با هم قرار دارند چش در دیدن با اشیا، با اشخاص با طبیعت مهر می‌ورزد و از این گذشته چش دور و حواس است و نقش چش که برابر با خرد نهاده می شود پاسبانی و نگهبانی و پرستاری جان یعنی زندگی و از این گذشته چش با حواس دیگر پیدا می شود این این معناشی است که خرد چون در گفتار دیات فایانتی از تمام وجود انسان از تمام تن می روید. یک رویه چیز از کل وجود انسان از تمامیت وجود انسان خرد با مغز و کله نیست این فرض دارد با عبد خرد یک رویه چیز از کل و به تمام نیازهای بدن نگاه میکند. برای این از که تمام نیازهای تن رو در گیتی برابرند این از که گفته می شود حکومت بر پایه گیتی خرد بر پایه خرد کاربند ببینید با این, با, با این واژه ما اتیاجی به مقهوم سکولاریته و لایسیته اصلا نداریم این علت این است که ما فرهنگ خودمان رو نمیدانیم. ما نمی دانیم از واژه خرد ایرانی چه میفهمیده است خرد یه چیزیست که از که ما با سر، تن سر و کار دارد نه اینه که سر و کار دارد بلکه اینکه از اینهاست ترابیده از اینهاست پیدایش یافته شده از اینهاست این از این که خرد در فرهنگ ایران نقش پرستاری زندگی رو دارد نقش خرد نقش متافیزیکی و ماورا ندارد خرد برای پرستاری پرستاری کردن زندگی در این دیدی برای پرستاری کردن طبیعت هست ببینید اینجا فرق پیدا می کنن. و هم با تورات هم با قرآن خرد برای پرستش زندگی هست اونجا الله را میپرستد، اینجا کسی زندگی را میپرستد، اینجا کسی طبیعت را میپرستد. شما خواهید که اینا کفر و شکر هست. نه چرا وقتی جان و خرد مغذت شد باید آنها را پرستید اونجا الله مقدس است یهوه مقدس هست. اینجا جان و خرد مقدس است به محضی که ما سخن از پرستش میبریم همه در ذهنمان معانی می که در ادیان ابراهیمی گرفته شده است. اصلا پرستش در فرهنگ ایران چنین معنایی نداشته تجلیل و تعجیم نبوده در حوضوارش که ما واجه های اساسی اینها بوده که بعدا موبیتان زردشتی تحریف کردند در حضورش ها میبینیم که واجه پرستیدن به معنای شادونیتن بوده است یعنی اصل واجه پرسته شادونیتن شادونیتن یعنی شادتاختن انسان همه جانها را در گیتی شاد میکن میپرستن یعنی شاد میکن. آب و خاک را جانور را گیاه را انسان را میپرسته یعنی چی؟ یعنی شاد میکنه میپرده از آنها پرستداری میکنه این است که وقتی که در داستان موسا و شبان در مولوی نگاهی بکنیم میبینیم که پر اون شپان پرهنگ ایران را بیان میکنه اون خدا را میخواهد برای چی میگوید بیاید خدای تا من چاکر از چارو قد کنم شانه سرت این خدا رو میخواد سرش رو شانه کند لباسش را بشوید از او پرستاری کند مهمانش بشود این است که اونجا ممتا که نقش تمام انبیای ابراهیمی رو بازی میکند نشان میدهد که با این چنین خدایی زدیت دارد چنین خدایی رو نمیتواند بپذیرد این خدایی برای وقت اون خدایش برای فضل او خدا میخواد اون الله میخواد حکومت بکنه، این, این خدایش که میخواد با انسانها زندگی بکنه، در دل این در خود انسانها بیا و زندگی کنه، زندگی کردن یعنی خدا بودن این که پیشکاری خدا چنین حقی را مانند تورات و قرآن به انسان نمیده هد. که بر طبیعت قلبه کنن خدای ایرانی به انسان طبیعت را نمیدهد که او که انسان خلیفه خدا باشد از این پر هرچی میخواد قدرت روایی بکنن مثل امروز که تمام دنیا رو دارن از بین میبرن برای اینکه بر دنیا قلبه کنن سنعت و مدنیت امروز قلبه بر طبیعت شده خدای ایرانی اصلا چند این حقی رو به انسان میده خیشکاری انسان رو پرستاری کردن و شاد ساختن طبیعت پرستاری کردن و شاد ساختن آبها خاکها جانوران و انسان ها انسان رو باید پرستی یعنی باید پرستش کرد مهم میریم الله رو پرستش میکنیم کنیم نخیر باید انسان ها رو پرستی خدا چیست؟ برای ایرانی خدا جانان است خوکه جان هست. پرستیدن خدا چیزی ساق، شاکتن و پروردن و پرستاری کردن از انسان از جانوران از گیاهان از آبها از خاک نیست این محکوم ایرانی از پرستش هست مسئله تعظیم و تجلیل و بزرگ یک اله فراز آسمان ها و جدا از طبیعت و از انسان و از جانور و از خاک و از گیاه از همه این خجالت می کشن جد حق نداره چون اینها باشد یعنی خودش رو بری از اینها می داند. مسئله مسئله ایران مسئله پرست، پرستیدن مسئله تعظیم و تجلیل نیست چون این الهی نیست پرستداری داری کردن اصلا با مسئله تعظیم کردن و بزرگ داشتن و اظهار و سجود و خضور و رکوع و تسلیم شدن ندارد، بلکه پرستش اشق و عزیب انسان ها به طبیعت، به جانوران، به گیاهان است. خدا این است که میگیم خدا در فرهنگ ایران پری بوده است. ما امروز نشخندی میزنیم که پری چی؟ پری یعنی عشق، معنای پری یعنی عشق، فری یعنی نیایش کردن. یعنی چی؟ یعنی اون چی, به اون چی که ما به خدا نی می... او را به اون اشفرزی میکن. همون عمل و اندیشه و گفتار روزانه به انسانها به طبیعت به گیتی این باید اشفرزی باشه این مفهوم ایرانی از واژه فری نیایش کردن که همون واژه فرید این واژه است. در پایان باید رابطی بین ماه و چشم ها را نیز دانست ماه یا خورشید و چشم انسان ماه و, ما و خورشید در فرهنگ ایران دو چیز پاره از هم نیست یکی از دیگری زاده میشود حالا در تفکر ایرانی همه انسان‌ها چشم همه انسان. ها یعنی خرد همه انسان ها که با هم جمع میشون این میشون ما و خوش اونگاه همه انسان ها با هم اصل بینش در تاریکی میشوند یعنی چشم همه انسان ها با هم جمع میشد میشد ما ما خوشه چشم همه انسان ها. و از این چشم بود که خورشید یعنی اصل بینش در روشنایی زیده میشه. این, بو این, این بود این است که وقتی چشم انسان ها خررد انسانه با هم هم چی میکنن؟ با هم میآ این از این اصل بینش در تاریکی و اصل بینش در روشنایی پیدا میشه. ببینید چه با این تصاویر چه معانی جلب و عالی رو اندیشیدن که ما چون که این تصاویر رو دقیقا نمیشناسیم از آنها رد میشه این بود که میگفتن که انسان دو چشم دارد یک چشمش ماه و یک چشمش خورسیده یعنی معنای این بود یعنی انسان دوگون شیوه بینش دارد در که یک چشمش این طرفش ماه باشد اون طرفش خورشید که بعدی از موبدان پنداش دارد نه معناش این بود که انسان دو شیوه بینش دارد و از آنجا که شبها در آسمان ماه چشم آسمان بود و روزها در آسمان خورشید چشم آسمان بود و یک چشم از چشم دیگر پدید آمده بود یعنی خورشید از ماه این اندیشه سبب شده بود که خدا را با یک چشم تفسیر می این در اروپا هم بوده است این اندیشه خیلی مهم است و ما این اندیشه را درست نمی فهمیم چون که اون منظور اصلی آنها را نمی دانیم این بود که در نقاشیها ها بسیار دیده می شود قرون مستاب و این ها که در میان آسمان یک چشم رو گاشته می شود یعنی این چشم خداست. این سپس مردمان این فلسفه را که فراموش کردن این بود که می این یک چشم بودن را که در عربی اعور می به دجال نسبت دادند البته این درست بود دجال که دوژ آل باشد یعنی سی مورغ. یعنی سی مرغ بعد دوژ آل این دجال سیمرغ است که زشت ناخته شده است این است که دج... ترس اسلام از این هست دجال هست. یعنی سی برگردد و این ترس هم درست است این ترس رو همیشه داشتن چون که این سی این در جگر و در جگر اساساً این همانی با بهمن دارد دل این همانی با سیمور دارد مغز این همانی با سیمور دارد این است که همه جان شده است خطر بازگشته چش ایومن سیمور است تخم سیمور است این ترسیدن از در جا ترسید سعید به چون که چنین خدایی در انسان با انسان آمیخته. همون سیمور هم ماه بود هم پرشید جون سیمور در شب ماه بود و در اون خورشید بود خودش خودش را میزاید این از خدا خودش خودش را میزاید مثلا معنا و مفاهیم خدا یعنی این است خدا به معنای خود آمدن نیست میدونید این را, را سبک نباید کرد همطور های شاعرانه از کلمات امروز است این که ما بحث خیلی مفصل در واژه خدا و اون طلبوت که در اغستا و متون پهنوی و زند و پیدا شده است اینها را یکی بیان خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که تصویر خدا در همین واجه ها چه بوده است هر انسانی چه در تاریکی و چه در روشنایی با تخم سیمر میبینه به چشم یکی از نام های چشم ایوم همون کلمه آی در ترکیه هنوز معنای ماه دارد من یعنی مینو یعنی تخم ما مینوی ما و این چشم بود که او را ره میکرد سیمور تخم سیمور در چشم هر انسانی و حالا مردمک چست که اصلا اسم خود سیمور است من نامهای مردمک چشم را جمع کردم و این خیلی جالب است که در میبینیم که این خود سیمور مردمک چشم هر انسانی این چشم بود؟ این چشم است که انسان رو رهداری می کنند. این بینش تر است که تبدیل به بینش در روشنایی می شود نه آنکه که خارج از او وجود داشته باشد که اشیاء و پدیده ها و رویدادها را رو روشن کند بلکه نوری که به بینش اصیل می رسد. از گوهر خود هر انسانی پیدایش می آفد. نه از کتابی که سرچشمه همه نورها روشنی در فرهنگ ایران از خود تو از خود انسان مردم من تقنیم انسان تخم است. تقم همیشه نوشونده از خود تو از خود انسان پیدایش میابند نیادی نیست که به مردم اصایی کتابی داده شود تا انسان کور با عصا باشد بلکه باید چشم هر کس روشنی از خودش به اشیاء بیاندازد خودش اصل روشنی بشود تا بتوانه ببیند انسان نور را از قرشید، از الله از قرآن از تورات با نمیگیرد این است که ایرانی با چنین چشم خرشیدگونهی به فکر ساختن حکومت و ساختن بهش درگیتی بود